به نور قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم با قسمت اول از مجموعه گفتگوهای صوتی به سوی نور پیرامون قرآن و کتب من قبل در خدمت شما دوستان گرامی شنوندگان عزیز و جناب آقای عدل محمدی هستیم آی عدل محمدی سلام عرض می کنم خدمت شما روز شما بخیر سلام الیکم و رحمت الله در خدمت شما و دوستان محترم هستیم تشکر می از شما در تورات مقدس در صحیفه خروج فصل 23 آیه 13 شما می بینید که الله در تورات مقدس میفرماید که نامی به غیر از نام الله بر زبانت جاری نشود این حکم سریع تورات مقدس الله میفرماید از زبان شما اسمی به غیر از اسم الله شنیده نشه حالا من شما رو میبرم به سمت کتاب زبور کتابی که به شهادت قرآن کریم بر داوود پادشاه و نبی اسرائیل نازل شده شما در کتاب زبور فصل 108 آیه 12 اینطور میخونید که فرموده ما را بر دشمن امداد فرما زیرا که مدد انسان باطل است این پیام سریح و روشنگر الهی که می‌فرماید زیرا که مدد انسان باطل است من زیرش خط می‌کشم توجه بفرمایید شما در تورات دیدید که الله فرموده اسمی به غیر از اسم الله بر لبهایت جاری نشود در زبور می‌بینید که می‌فرماید زیرا که مدد انسان باطل است حالا من شما را می‌برم به سمت کتاب انجیل در انجیل مقدس الله صفحه متی فصل ششم آیه نهم شما میبینید که اینجا عیسی بن مریم به هواریونش میخواد دعا کردن رو یاد بده عیسی بن مریمی که در تعدد معجزاتی که انجام داده به شهادت خود قرآن کریم و خود انجیل از همه پیامبران دیگه در تعدد این معجزات پیشی گرفته ببینین اینجا موقعی که اون میخواد به هواریون دعا کردن رو یاد بده نمیگه من را بخوانید. نمیگه بگید یا عیسی مریم یا مسیح عیسی مریم هرگز هرگز هم چی حرف نمیزنه بلکه اینطور میفرماید پس شما به اینطور دعا کنید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد نمیگه که موقعی که میخواین دعا کنید دعاتون رو ببرید به سمت کسی دیگه ای. نمیگه که منو واسطه قرار بدید بلکه اینکه مستقیم به سمت علا، به سوی الله به وچه علا ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد نام تو مقدس باد نه نام کسی دیگه ای. خب من این آیات رو از کتب من قبل قرآن کریم انتخاب کرده بودم تا یک مقدمی باشه برای اینکه ما حالا به مدخل قرآن کریم رجوع بکنیم از برادر عزیز جناب آقای عدل محمدی درخواست دارم که با استناد به آیات قرآنی این مسئله خاندن غیر الله رو که متاسفانه در بین فرقه های مذهبی ما این همه شیوع داره رو برای ما باز بکنم ببینیم آیات قرآن کریم پیرامون خاندن غیر الله چه دستوراتی رو عنوان فرمودند در خدمت شما هستیم استدعا میکنم بسم الله الرحمن الرحیم ببینید برادر بزرگوار من شناخت مرحله اول آزادی هر انسانی برای اینکه بتوانیم ریشه خبیسی دکانداران دین رو بزنیم بایستی به این کلام الله متن مقدس کلام الله تعالی بایستی اعتسام بجویم متمسک بشویم در سوره مزمل آیه قرآن کریم قال الله تعالی فقر او ما تیسر من القرآن هرچه ما یسر می شود قرآن را بخوانید. براسی مذهبیون ما کلام الله را میخوانند. آیا مطالعه می کنید کلام خدا را مطلق گذاشتیم و به یک موهمات و خرافات عباطیل مذهبی دست آخدیم که اساسا با شریعت عالی اسلام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 در مورد خواندن غیر الله براتون محطم میکنم بله، سوره احراف آیه 194 فرمودید بله بله بله خواهش میکنم الله میفرماید کسانی را که به غیر از الله به فریاد میخوانید بندگانی مانند شما هستند عزیزان توجه کنید کسانی را که به غیر از الله به فریاد میخوانید صدا میزنید بندگانی مثل شما هستند اگر راست میگویید آنها را صدا بزنید تا شما را اجابت کنند. ببینید دوستان گرامی واجی تدعون دعوت خواندن صدا زدن. عزیزانی رو بدانید که اکثریت این ترجمه هایی که ما در ایران داریم از فیلتر جامعی مدرسین حوزه علمی و قوم و اصلاح فقهای و پرهوب جام جامو شرایط رد شده است. عزیز. ببینید دوستان گرامی توجه کنید که اومدن واجی تدعونه دعوه و خواندن رو به عبد به عبادت اومدن در واقعیت اهم چیکار کردند تغییر دادند. یعنی کلام الله رو تغییر دادند، قلب کردن، کتمان کردند، پوشاندند. در حالی که واجی تدعونه به معنای خواندن است به معنای صدا است الله میفرماید کسانی که به غیر از خدا صدا میزنید بندگانی مثل شما هستن آقا عزیز من برادر من عزیزش تشیع من عزیز تسنن من نگاه بکن جامعه شرک سدی خودت رو برو نگاه بکن نگاه بکن که تو داری غیر الله رو داری صدا میزنی میگی یا محمد رسول الله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 بله بله برادر بزرگوار این دقیقا به این صورت اکثر این تجامه هایی که شده اومده واجی تدعونه تدعونه از دعوه میاد دعوه یعنی از خواندن صدا زدن دعا، همین که ما داریم میگیم می یا الله یا الله یا حرف نداز الله هم مناده داریم داریم صداشو میزنیم الله رو یک مسئله رو باز من خدمت شما و سایر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 وقال ربکم ادعونی استجب لکم واژهٔ دعوه اینجا به معنی خواندن و صدا زدنه بعد ادامه این ان الذین یستکبرون عن عبادتی اینجا واجی عبادتی از عبد بودن این به معنای عبادته به معنای پرستش محسوب میشه ببینید من توصیه من اینه که اولا قرآن کریم رو مطالعه بکنید کتب من قبل رو مطالعه بکنید الان با توجه به اینکه ما نرم افزارهای خوبی رو داریم کتابی هست زیر عنوان المعجم المفهرس نویسنده محمد فؤاد عبد الباقي مسی کشف الایات قرآنی. شما میتونید یک واژه رو بگیرید مثلا واژه دعوه رو کلیه آیات مرتبط با اون واژه آدرس آیات دقیقا برات میاد شما این آیات رو برو مطالعه بکن دقیقا داری میبینی که دقیقا داری نگاه میکنی که الله خاندن قیرش رو داره نفی میکنه یک فعل حرام میدونه یک فعل باطل تلقی میکنه دوستان گرامی ببینید سوره حج آیات 73 الى 74 قرآن کنیم رو ملاحظه بفرمایید ای مردم مسئله زده شد پس بدان گوش فرادهید کسانی را که جز الله صدا میزنید میخوانید هرگز حتی مگسی نمی آفرینند هرچند برای آفریدن آن اجتماع کنند و اگر آن مگس چیزی از آنان برو باید نمی توانند آن را بازپس گیرند طالب و مطروب هر دو ناتوانند ارزش الله را چنان که در خروع نشناختند در حقیقت الله هست که نیرومند شکست نپذیره در همین آیه یعنی سوری حج آیه 73 و 74 دقت کنید دوستان گرامی واجه قدعونه اشاره شده یعنی خاندن صدا زدن الله داره میگه آقا اون کسایی که داری صداشون میزنید نمیتونن مگسی رو بیافرینن عزیز تشیع من عزیز تسنن من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 و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم عجب. پس آنن باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راهیابند خب این پیام یعنی چی یعنی... باز من آیه رو از خود قرآن کریم خدمت شما و سایی عزیزان میارم سوره حدید آیه این... چهار رو اینه که فرمودی سوره بغره آیه 186 خیلی جالب بود از این نظر که فرموده که دعای آن کسی که من رو بخواند در جا اجابت میکنم پس, بلی... پس این ارتباط بی نهایت ارتباط مستقیمیه و نیاز به هیچ واسطی نداره ماشالله بله, بله بله بله دقیقا این تمام قرآنی رو داره میگه کتب منقبل قرآن کریم داره پیام که میگه مستقیما و بدون واسطه من آیاتی رو میرم عزیزان اللهی که داره میگه من از رگ گردن به شما نزیکترم میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم. سوری قاف آیه شانیزه قرآن کریم سوری حدید آیه چهار قرآن کریم الله میفرماید و او با شماست هر کجا باشید و الله به آن که انجام میدهید بیناست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 خب این تفکر رو الله مردود میدونه ببینید برادر گرامی آنیه قرآنی هم من خدمتتون میارم در سوره احقاف آیات پنج و شیش قرآنی کریم زالترین انسانها در پیشگاه الله تعالی اینجا دقیقا حوویداست مشخص کرده ترسیم کرد الله را بالعلمین برای ما الله میفرماید و کیست گمراه در از آن کس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 در مورد همین اینایی که نماز می خونند حالا شما نگاه کردی برادر گرامی نماز میخونه خونه هر روز داره میگه سوره حمد میاد میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین تا آخر بله بله. بعد میگه یاک نعبد و یاک نستعین بعد میگه یا علی مدد من میخوام ببینم که معنی این یاک نعبد و یاک نستعین یعنی چی برادر گرامی الله در اینجا داره اشاره داره میکنه میفرماید تنها تو را میپرستم و تنها از تو مدد میخواهم استعانت میخواهم یعنی مدد خواستن مدد خواستن استعانت خواستن باعثی از الله رب العالمی باشه باز من این رو تأکید میکنم برادر گرامی برادر بزرگوارم این رو اشاره میکنم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 به قول معروف سه ساعت میشینی سریال, سریال های تلویزیونی رو نگاه میکنید مینی سینما میشینید به قول معروف در محافل به قول معروف خوز میکنید با همدیگه دیگه یک سری خوزعبلات و لاتائلاتی که بعضی مطرح محترم میکنند خب به جای این آقا یک بار این اگر اعتقاد داری به الله اعتقاد داری اگر اعتقاد به معاد داری آقا این کلام الله رو مطالعه بکن فردا با ایسی و کوی اعمال و رفتار خودت باشید این رو بدونید برادران گنامی خواهران عزیز فردای قیامت با متن مقدس کلام الله مواخذه میشید نه با لاتائلات مذهبی، نه با خوز مذهبی. اساس درس و بحث متن مقدس است نه خوز که به عباطیل مذهبی که شما دارید میبینید که رواج داره که ساخته و پرداخته ذهن مسموم و متعفن مشتی آخوند خودکار و دکاندار دین که اومدن دین رو ابزار ارتزاق و ستم خرافه پروری قرار دادن من این آیه رو باز برادر گرامی وقتی شریف شما و عزیزان رو من نگیرم سوره فاطر آی سیزم و چهارده را میگم ختم کلام بشه خواهش ماند. الله میفرماید و کسانی را که بجز الله صدا میزنید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 صدا بزنید دعاهای شما رو نمی شوند. ببین بنا در چقدر قشن پیام رو نگاه بکنید و اگر بشنوند اجابتتان نمی کنند و روز قیامت شرک شما رو امکان می کنند و هیچ کس جز الله تو را خبردار نمی کنه خب این پیام توحیدی سراحتی که این آیه داره خیلی باقعا بالاست سقیما و بدون واسطه و یک مسئله رو باز اشاره می برادر گرامی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 در پرتو پرامین روشنگر خیش بر همه مظلومان و ستمدیدگان عنایت فرما یا رب جلیل باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته